دشمنی دشمنان ما به خاطر این است که نظام جمهوری اسلامی در مقابل نظام سلطه استاده است در مقابل عادت بد تقسیم دنیا به سلطگر و سلطپذیر ایستاده است بقیه چیزها بهانه است امروز بهانه مسئله هستهی است یک روز بهانه حقوق بشر است یک روز بهانه یک چیز دیگر است اونها میخواهند نظام جمهوری اسلامی رو از ایستادگی در مقابل غلدرها و گردنکلفتها و باج بگیرها و زورگویان عالم منصرف کنند البته این اتفاق نخواهد افتاد ملت ایران توانایی خود را در میدانهای مختلف اثبات کرده است ملت ایران اثبات کرده که بدون تیکیه با آمریکا هم میشود پیشرفت علمی پیدا کرد هم میشود پیشرفت اجتماعی پیدا کرد هم میشود نفوذ بین المللی پیدا کرد هم میشود عزت سیاسی در دنیای بشریت رو پیدا کرد اینو جمهوری اسلامی اثبات کرده اونها از این ناراحتند یک ملت و یک کشور و یک نظام بتواند با استقنای از زورگویان و باج بگیران و سرگردنه بگیران بین المللی با بیعتنایی به آنها حتی با مخالفت و دشمنی اونها بتوان خود رو از مشکلات بیرون بکشه ارزاندان بکنه حضور خود و نفوذ خود رو علا رقم آنها و به کوری چشم آنها بر آنها تحمیل بکنه اینه که اونها را عصبانی کرده است عصبانی شدند عصبانی بشوند به تعبیر مرحوم. شهید عزیزمون شهید بهشتی از عصبانیت بمیرند ملت ایران راه درست رو انتخاب کرده است راه درست رو شناخته است ما دانستیم که بدون اتکاع به قدرت های زورگو و می میتوانیم پیش بریم میتوانیم قوی بشیم میتوانیم میدانهای ناشناخته و ناگشوده اندیشه بشری و فکر بشری و دانش بشری رو بگشاییم میتوانیم دل ملتهای دنیا رو به خودمون جذب کنیم اینو ما شناختیم عمل کردیم و پیش خواهیم رفت و دشمن نمیتوانه اکثریت دنیا هم با نظام جمهوری اسلامی همراهند ملت ها حتی در کشورهایی که خودشون مستکبرن ملت ها هایی که میدانند حقایق رو ملت ایران رو قبول دارن جمهوری اسلامی رو ستایش میکنن با چشم تکریم نگاه میکنن امپراتوری خبری استکبار میخواهد نگذارد آوازه ملت ایران به گوش برسه اما علی رغم آن امروز به بخش مهمی از دنیا پر است از نشانه های اعتقاد مردم و اعتماد مردم به ملت ایران و ستایش ملت ایران در چشم و دل و زبان آنها